بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه نهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولانتالله علا عالا هم اجمعنی نه اله یومدین مسائلی که برای رفاقا می بفتیم مثل این که تموم شدش دیگه اون که یعنی به دردشون می خوره و مخواستم محفظه که چه مسائلی رو شروع کنیم مثلا یادم نه حالا رو بکنیم چه مسئله شروع کنیم حالا این یه مسئله ارز میکنیم بعد فکر کنید برای هفته آینده بعد مسئله قبلا این مسئله رو به مناسبت های عرض کرده ایم که اگر کسی در نماز جماعت رکنی را زیاد کند به عنوان متابعت اد ندارد رکن اگر کسی زیاد کند در نماز باطل میشه نمازش ولی در نماز جماعت به عنوان متابعت اگر رکنی را زیاد کند ضرر به نماز ندارد مثلا فرض برمایید رفته بود به رکو با امام خیال کرد که امام سر از رکو برداشته این سر از رکو برداشت ولی بعدا متوجه شد که هنوز امام در است این بر میگرده به رکو و با امام سر از رکو بر اینجا رکو زیاد شده دو تا رکو در یک رکعت دو تا رکوع کرده ولی یکیش به عنوان متابعت در جماعته این باید برگرده به عنوان متابعت برمیگرده با امام رکوع میکنه و مرتبه با امام سر برمیداره امام یه رکوع کرده ولی این آقا دو تا رکوع کرده رکوع در نماز اگر زیاد بشه عمدن یا صحوان مبتله مگر در نماز جماعت و همچنین از اون طرفش اگر کسی اشتباها قبل از امام رفت به روکو. بعد متوجه شد که امام هنوز به نرفته زیاد این مطلب در رکعت دوم اتفاق میفته که رکعت دوم بعد از همدسوره امام قنوط میخانه معموم حواسش جمع نیست میره به بعدا متوجه میشه که امام قنوت داره میخانه خبی بر میگرده با امام قنوت رو میخانه و بعداً به رکوع میره و از نشاهد بعدش که بارو امام رکوع رفت دوتا رکوع کرده ولی ولیکن یکیش عنوان متابعت در جماعت بوده است این ضرری به نماز جماعتش نداره پس مسئله تا اینجا این شد که اگر یه کسی قبل از امام سر از رکوع برداشت اشتباهن و بعد متوجه شد که امام هنوز در رکوعه میره به رکوع و یک رکوع زیاد شده ولی چون به عنوان متابعت هست اشکالی نداره و همچنین اگر کسی قبل از امام به رکوع برود و متوجه بشه که هنوز امام رکوع نرفته ای بلند میشه مثلا با امام قنوطش رو میخانه و میره با امام به رکوع یه رکوع زیاد کرده ولیکن چون به عنوان متابعت هست زرر نه چه آقا؟ دو دفعه؟ نمازش باطله؟ نمومینم نباید برم دارم بروک اگه میبینم امام اشتباهی دارم میروه بروک نمومین نباید نمازشون باطل کنم باید فراده کنم نمازشون درست بخونم مطلبی را که میخواستم تذکرن عرض کنم که احتمال میدم قبلا عرض نشده باشه اینه و اون که اگر کسی زودتر از امام سر از رکوع برداشت خب لاغوز ذکر رکوعشو گفته و سر بر میداره ذکر رکوعشو میگه خیال میکنه امام سر برداشته این سر بر بعدا بعدن متوجه میشه که امام هنوز در رکوعه و سر بر نداشته خب ذکر رکوعشو گفته بود و سر برداشت حالا به عنوان متابعت میره به رکوع ولی دیگه در اینجا لازم نیست که ذکر بگه ذکر رو قبلا گفته میتوانه به نیت ذکر بگه سبحان ربی العظیم یا ذکر دیگری ولی میتوانه ایچی هم نگه ذکرشو گفته قبلا ولی اگر قبل از امام بره به رکو. اگر قبل از امام بره به رکو. این احیاتش این است که اینجا ذکرش رو بگه و سربرداره رفت به رکو تا رسید به رکو متوجه شد که امام داره قنوت میخونه رفته قنوت داره میخونه این ذکر نگفته بلند نشه ذکرش رو بگه و بعد سربردارد برای چون رکوع اصلیش اینه اون رکوه دومش به عنوان متابعته بنابراین ذکرش رو بگه و بعدن بلنش قنوط رو بخانه و دو مرتبه با امام به رکو بره پس این دوتا فرقش همین کلمه بود که عرض کردم و قبلا نگفته بودم اگر قبل از امام سر از رکو برداره میره به رکو ولی دیگه ذکر نمیخواد بگه چون قبلا گفته اگر ذکرم بگه به نیت ذکر کار است ولی اگر نگفت زرد این نداره ولی اگر قبل از امام رفت به رکو و متوجه شد که امام رکو نرفته این باید ذکرش رو بگه احتیاطاً و بعد سر از رکو برداره بعداً با امام وقت میره به رکو پس این نکته است که شاید خیلی توجه نداشته باشن وقتی قبل از امام میرم به رکو تا متوجه میشن که امام رفته قنود داره میخونه زود بلا فاصله بلند میشن این دقت کنن که ذکر رو بگن و بلند شن اللهم صل على محمد